برنامه از شهزاد اردلان خب دوستان به ساعت دوم برنامه, برنامه پیک هفته نخستین برنامه از مجموع برنامه های پیک هفته خوش آمدید، شرزا دردلان هستم و دنباله برنامه رو تقریم حضورتون می کنم. دوست داریم در این بخش برنامه هر هفته شما رو با ایرانیان اثرگذار، مطرح و خادم جامعه آشنا کنیم. امروز خیلی خوشحالم که با لطف و محبت و همکاری انجامن استادان و پژوهشگران ایرانی به معرفی عزیز نازنینی که قبلا هم شانس ملاقات باشون رو داشتم به پردازم، خانم دکتر مریم حق نگهدار رو به شما معرفی کنم دوستان خانم دکتر مریم حق نگهدار فارغ و تحصیل دانشگاه دانشگاه پزشکی دانشگاه شیراز هستند سال هاست که در شهر فرشتگان در خدمت پزشکی پزش. و پزشکانی که از ایران میان فعالیت میکنند ایشون پریزیدنت ایرانیان امریکن مدیکل اسوسییشن IAMA شاخه کالیفرنیا هستند کلاس هایی هست که حالا بهش خواهیم پرداخت کپلن و USMLE که پزشکان برای ورود به دوره تخصصی و رزیدنسی در اون شرکت میکنند و ایشون مشاوره های لازم رو در زمینه موفقیت این عزیزان امکان پذیر میکنند که هر چه زودتر بتونند این متخصصینی که تصمیم به مهاجرت به این کشور می گیرند با شرایط و قوانین اینجا آشنا بشن، جا بیافتند و به با اونچه که مورد نیازشون برای آغاز فعالیت های ایشون هست دست پیدا کنند امروز برای ما پیرامون سخنرانی‌های های ماهانه پزشکی انجامند که هر یک شنبه در ماه از سطح دوی بعد از در یوسیلی برگزار میشه ایشون توضیحاتی میدن که انشالله عزیزان بیشتری بتونن از این زهمات کاران انجمن و استادان و پژوهشگران استفاده کنن و اوگاهیهای خودشون رو در جوانه به مختلف بالاتر ببرن خانم دکتر مریم حق نگهدار از سلام در آن خوش آمدید به برنامه امروز ما سلام عرض میکنم منم خدمت شنوندگان محترم رادیو ایران و شما و تشکر بسیار فراوان از اینکه وقتتون رو در اختیار من و همکارانم در انجمن استادان و, و پژوهشگران قرار دادین. صحبت کوتاهی داریم در ارتباط با جلسته هایی که ماهیانه یک شنبه اول هر ماه یک اولین یک شنبه هر ماه از ساعت دو تا پنج بعد از ظهر در UCLA برگزار میشه. موضوع این کنفرانس دستا ارت های جدید علمی در رشتهای مختلف پزشکی هستش. و اولین جلسه این سری برنامه ها همین یک شنبه اول ماچ در نroscience Research Bu در دانشک پزشکی UCLA برگزار میشه و آدرس سالن این کنفرانس هست 635، سا، چارلز ای.ینگ Drive لوس انجلس کالیفورنیا 90095 که در حقیقت در داخل دانشگرده UCLA هستش سالن نورساینس ریسرچ بیلدینگ یا به اختصار NRB بهش گفته میشه ورود برای عموم آزاده؟ بله ورود برای عموم آزاده برای گان؟ بله <laughs> بله, <laughs> بله. بعد سخنرانانی که این هفته قرار برامون زحمت بکشن و سخنرانی کنن عبارتند از آقای دکتر جمشید مداحی از UCLA، آقای دکتر جدوار از USC، خانم دکتر گلاره آبادی از Kaiser Permanente و آقای دکتر مدبر، پژوهشگر جراحی مغز و اعصاب از UCLA و من یک توضیح مختصری به هر کدوم از سخنرانانمون میدم شکر. که شروع میکنم با آقای دکتر مددهی که ایشون کاردیولوژیست هستن و متخصص قلب بنام در سراسر سر جهان و از پیش روان تحقیقات در زمینه علوم بیماری های قلب و عروق تحقیقات بسیار زیادی داشتن و دستاوردهای بسیار خوبی درباره روشهای روش های جدید اندازه گیری مایوکاردیال پرفیوژن و گردش خون در رکحای قلب و تشخیص بیماران اروغ کورونر و بررسی خطراتی که شامل حال این دسته از بیماران میشه همچنین بررسی میزان کاربرد و اعتباری که نوکلیر امیجین در درمان بیماری های قلبی داره سخنرانی خواهند کرد آقای دکتر مدداهی همچنین استفاده از تکنیک پتسکن رو در تشخیص و درمان بیماره های قلبی برامون توضیح خواهند داد ام سخنران دوممون آقای پروفسور حسین جدوار هستند ایشون استادیار دانشگاه علوم پزشکی USC و کل در دورشته رادیولوژی و بیومدیکال انجینیرینگ هستند و همچنین در حال حاضر پرزیدنت Society of نوکلیر Medicine و مولکولی Imaging و پرزیدنت پت سنتر of اکسلنس از همون Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging هستن و واقعا ید طولایی در تحقیقات و فناوری های جدید در این زمینه از پزشکی دارن موضوع صحبت ایشون ایمیژینگ و تریتمنت آف پروستیت کانسر با نوکلیتز می باشد. به تازگی علاقه بسیار زیادی در استفاده از، به استفاده از Targeted رادیو نوکلئوتاید Therapy یا TRT در درمان بسیاری از بیماری ها در رشته‌های های مختلف پزشکی پیدا شده. ولی البته هنوز یک ساختار مشخص و یک سازمان واحدی برای گردآوری نتیجه تحقیقات تحقیقات و بررسی جنبه های مختلف استفاده از اینتیRT به وجود نیومده. یعنی مداوا دقیقا میره و به جایی که باید. نفوذ میکنه دیگه به سلولای اطراف و دور کاری نداره یه زبان خیلی ساده بله بله yes. میشه روی ارگانی که باید بله و خیلی کاربورد داره این نوع مداوا در درمان سرطان های مختلف و دیگه لازم به گفتن نیست که واقعا برای اینکه این, این روش درمانی بتونه بیشتر مورد استفاده بشه نیاز به این هست چون یه نوع سرطان نیست که اینو میتونن استفاده کنن انواع مختلف سرطان ها در سراسر مثلا در تیش ها و بافت های مختلف بدن میشه ازش استفاده کرد و برای اینکه بتونیم این روش درمانی رو بیشتر استفاده کنیم نیاز به این هستش که نتیجه تحقیقات از سنترها و بیمارستان های مختلف روی بیماران مختلف جمعوری بشه و بنابراین به نظر میاد که یک واحد و ساختار مرکزی که بتونه اطلاعات دریافتی از تحقیقات انجام شده در این زمینه رو به شکل منظم و مرتب در یک جا جمعوری کنه و ارائه بده و بررسی کنه به شدت احساس میشه که یک ایشالا که بشه در آینده نزدیک که همچنین ده ده محلی رو ایجاز کردن. سخنان, بعد. سخنان بعدیمون خانم دکتر گلاره آبدی، چشمزشک هستن، فارغ و تحصیل از دانشگاه یل و ایشون در ارتباط با مسائلی از جمله آب موروارید، مکولار دی آب سیاه یا همون گلاکوما، خشکی چشم، رتنالی تچمنت یا پارگی شبکیه و بیماری های شبکیه در بیماران دیابتی و بیمارانی که فشار خون بالا دارن صحبند خواهد کرد. و آقای دکتر مرتزا مدبر هم در رابطه با درمان های نوبین در آسیب ستون مهره ها و نخا برای ما صحبت خواهند کرد ایشون در رابطه با روش های جدیدی که میتونیم با اونا به بیمارانی که دچار زایعه نخایی شدن در سطوح مختلف نخا کمک کنن صحبت خواهند کرد و اینکه چطور میشه به اونها کمک کرد که عملکرد خودشون رو بعد از ضایعه بهتر به دست بیارن. چون همونطور که میدونین نخوا بسته به اینکه که در چه نقطه قطع بشه اون عملکرد و او اعضای پایین اون سطح نخوا از دست میره. بعضی وقتا با به اصطلاح ریهابیلیتیشن یا روش های دیگه یه جوری با بیمار کار میکنن که بتونن این فانکشن به اون اعضای زیر محل زایر رو به دست پیارن اشون بیشتر راجع به این مسئله صحبت میکنن و همینطور اینکه که چگونه نخواه میتواند یه دستوراتی رو به نقاط مختلف بدن بفرسته بدون اینکه از مقص که در حقیقت فرمانده بدن هست دستور بگیره این بیشتر این هم موضوع صحبت آقای دکتر مرتزا مدبر خواهد بود سخندانی ها به زبان فارسی خواهد بود؟ بله بله به فارسی، ورود برای عموم آزاد و رایگان دوستانی که مایلن در زمینه هایی که بهش اشاره شد از متخصصینی که بهترین در نوع تجربه خود هستند استفاده کنند میتونند تشریف ببرند، نه بیلیتی هست، نه هزینهی وجود داره اولین یک شنبه هر ماه که همین یک شنبه، اول مارچ خواهد بود از دوی بعد از ظهر در دانشگاه یویسیلی برگزار میشه یه بار دیگه آدرس اگه یاد بکنید مطمئنا دوستان بیشتری خواهند تونست که بیان و از این مجموعه سخنرانی ها این واقعا یه گروه استثنایی که هر کدوم در زمینه تخصص خودشون بهترین هستند استفاده کنند. بله حتما ام... ام... سالون Neuroscience Research Building یا NRB آدیتوریوم به صلاح میگن توی کمپس UCLA و آدرسش هست 635 South Charles E. Young Drive در لس آنجلس یعنی در UCLA در لس آنجلس زیب کد 995 یا 90095 اولی. باز از در کاران انجامن استادان و پژوهشگران ایرانی تشکر میکنیم خانم دکتر مریم حق نگهدار یکی از اعضای این انجامن هستند که سلام و درود و تشکر ما رو خدمت آقای دکتر محمد نواب هم خواهند رسوند و تمام دیگر عزیزانی که بایشون همکاری میکنند این سخنرانی های ماهانه مرتب به طور قطع میتونه دانش و آگاهی جامعه ایرانی رو در مورد مسائل مربوط به سلامت و بهداشت و امکانات تخصصی فوق فوقلاده بالا ببره که از تازه های تکنولوژی علاوه بر علم پزشکی آگاهی پیدا بکنند و انشاءالله سلامت در دسترس همگی باشه فرصتمون اجازه یک دقیقه من میخواستم که این کلاس‌های کپلن رو برامون بگید که چی هست بله همچون که میدونین دانش یعنی فارغ التحصیلان پزشکی از سر, و سر دنیا حالا ما بیشتر بعد نظرمون ایرانی ها هستند که فارغ التحصیل میشن وقتی وارد خاک آمریکا میشن و بخوان اینجا حرفه پزشکی رو ادامه بدن باید یک امتحاناتی طوري برگزارونن به نام یو اس مدیکال لایسنسینگ ایکزام که مؤسسی که برای این امتحان ها کلاس های مخصوصی داره لایو لکچر داره یا یه سری به صلاف پریپریشن ویدیو هایی داره, ها داره که و خب من تو اون کلاس ها در زمینه تستیکینگ استراتژی درس میدم همچنین راهنمایی نمایی میکنم بچه ها رو که به چه صورت درس بخونن که به امید خدا در این امتحان ها مهمتر از همه نمره بسیار بالایی بگیرن و بعد بتونن در زمینه رفتن و ادامه تحصیل برای تخصص محفظ ای درود به شما که این بچه ها رو کمک کنیم از طریق وبسایت سایت انجامن استادان و پژوهشگران ایرانی appc.org دوستان میتونن اطلاعات و آگاهی های دقیق تری رو دریافت کنند خانم دکتر مریم حق نگهدار از لطفه و حضورتون در برنامه امروز تشکر میکنم منم و از وقتی که در اختیار ما قرار دادید بازم هم دیست